آبوی سرعملی چند وقت پیش یکی از میلیونرهای خیر من مرد روزنامه ها تا میتوانستن درباره خوبی های میلیونر مرحوم نوشتند من آن میلیونر خیر را از نزدیک میشناختم حتما در روزنامه ها اید که کلی مدرسه و درمانگاه و از اینطور چیزها ساخته خیلی کارهای خوب انجام داده خوبیش به من هم رسیده امروز اگر تاجر مشهوری هم، خودم رو او امیدانم. کوچکترین خوبی را که این میلیونر خیر انجام داده برای تا تعریف میکنه. خوبیش در حق آبا. قضیه مال خیلی وقت پیش است. میلیونر ما آن موقع هنوز نه میلیونر شده بود، نه خیر. البته خیلی زودتر از آنکه خیر شود میلیونر شد. اول میلیونر شد، بعد دم مرگش خیر شد. وارثهایش هم هیچ وقت قبول نکردند که او خیر شده بوده. دخترها و پسرهایش در دادگاه هر باز واس کردند با این عنوان که پدرمان در روزهای آخر دچار اختلال حواس شده بود. هیچ کدام از بذل و بخششهایش معتبر نیست. اگر در دادگاه برنده شوند، همه کارهای خیر آن مرحوم را برباد می‌دهند. در این میان کسی از من چیزی نمی‌ اما خودم این را بگویم که در این زمینه با وراس آن مرحوم موافقم اگر کسی تا هفتاد سالگی حتی هفتاد قروش هم کار خیر انجام نداده باشد آن وقت دو ماه مانده به مرگش یک دفعه سر کیسه را شل کند و یک چهلم اموال و هایش را بزل و بخشش کند روی این کارش جز دیوانگی مگر اسم دیگری هم می شود گذاشت بگذریم بیایید برایتان آن خوبی را تعریف کنم که در حق آبو کرده بود. آن وقتها ها کار راهسازی بود. من هم منشیش بودم. روزی برگشت به من گفت باید واسه کارگر رو بوفه باز کنین. گفتم به روی چشم. گفت اینجا بالای کوه کارگرها برای خریدن خوراکی خیلی سختی میکشن. همان موقع بود که فهمیدم چه مرد خیری است. پنجاه لیره بهم به پول داد و گفت میرین از قصب زیتون، پنیرخیکی، حلوه نون و پیاز میخرین میارین چیزهایی را که گفته بود از قصب خریدیم و توی یک چادر گذاشتیم و چادر شد بوفه من به پول آن موقع ماهی سی دیره حقوق میگرفتم و شده بودم مسئول بوفه فکر نکنید سی پول کمی بود کارگرها روزی سی گروش فوقش پنجاه گروش ماز میگرفتند رئیس یک سیاهه به دستم داد توی سیاهه اسم کارگرها رو نوشته بودم آخر هفته سرکارگر بین کارگرها مقوه های شکل پخش کرد. این مقوه های ای را خود رئیس درست کرده بود. در یک طرفش امضای رئیس بود و طرف دیگرش ارزش آن نوشته شده بود. پنج قروش، ده قروش و؟ اینها جای پول بود. سرکارگر با توجه به سیاهیی که در دست داشت به هر کدام از کارگرها مقداری از این مقوه داد. کارگرها که جیبشان را با مقوّا پر کرده بودند گفتند خود عمرش بده مقاطعه کارو بعد دویدن سمت بوفه در سومین روز افتتاح بوفه دیگر مقوایی دستشان نمانده بود اجناس بوفه هم تمام شده بود رئیس مقواه ها را از من گرفت دوباره پنجاه لیره بهم داد من هم دوباره رفتم و از قصب زیتون پیاز پنیر و نان خریدم و آوردم اما کارگرها مقوا نداشتند تا از بوفه چیزی بخرند آن وقت بود که رئیس گفت توی سیاهی که بهت دادیم، پولی که کارگر آخر هفته میگیرن نوشته شده. به سیاه نگاه کن و با توجه به اون به کارگرها جنس نسیه بده. کارگرها جنس نسیه گرفتند. آخر هفته به به بوفه از مزدشان کم شد و اینطوری مقوای کمتری دستشان را گرفت. جنس توی بوفه که تمام میشد میرفتم از قصبه همان چیزها را می و میآوردم. سرمایه بوفه هیچ وقت پنجه و یک لیره نشد. بعد زمانی رسید که قضیه مقوای دایره ای دادن به کلی منتفی شد چون آخر هفته که میشد همه کارگرها به بوفه بده کار بودند طوری شده بود که اگر کارگرها سه ماه تمام بدون گرفتن مقوا کار می باز هم نمی توانستند بدهیشان را به بوفه صاف کنند رئیس خیر ما هم اجازه میداد تا هر وقت دلشان خواست از بوفه جنس نسیه بگیرند اما راستش کارگرها این خوبی رئیس را با خوبی جواب ندادند. بارو بندیلشان را بستند و رفتند. به فاصله ی سه چهار کیلومتر با کارگاه ما یک کارگاه دیگر راهسازی بود. مقاطع کار اصلی راهسازی که برنده مناقصه شده بود، خودش دستش را به کار آلوده نکرده بود و کار را میان چند مقاطع کار کوچک تقسیم کرده بود. رئیس ما همان وقتهایی که از این مقاطع کارهای کوچک بود. وقتی کارگرها که مزد هفتگیشان، سه لیره و پنج لیره بود بدهیشان به بوفه از ده لیره میگفتند می می‌گفتند ان‌شاءالله خر تو گاز بگیره رئیس بعد لحاف‌های وابسته را میانداختند پشتشان و میرفتند پیش دیگر موقعه کارها وقتی کارگرهایی که کلاه ما را برداشته بودند پیش دیگر مقاطع کارها می‌رفتند کارگرهایی که کلاه دیگر موقعه کارها را برداشته بودند هم نمی‌آمدن پیش ما همه دهاتی‌های آن منطقه به بوفه ها کار بودند و از اگر همانطور پیش میرفت اول با یست ها بعد هم مقاطه کارها ورشکست می شددند. بوفه، بفهه و می بعد هم می رفتن پیش مقاطه کاری دیگر اما بعد از مدتی دیگر مقاطه کار جدیدی نمانده بود که کارگرها پیشش بروند. ما هم کم بود کارگر پیدا کرده بودیم کار را نمی توانستیم به موقع تمام کنیم آن وقت رئیس ما راه چار پیدا کرد شناسنامه کارگر هایی را که پیش ما میآدن می کسی که شناسنامهاش را میداد دیگر نمیتوانست برود. عمل جماعت اگر لحاف وستهدار و شناسنامه پارهشان نباشد جای نمیتوانند بروند. کارگرهایی بودند که به بوفهمان که کل سرمایش پنجاه لیره بود پنجاه لیره به بودند. اما باز هم بوفهمان ورشکست نمیشد. حسابی نیست که بشود ازش سر آورد. خوب یعنی همین. اندازه 50 لیره نسیه دادن به عملی که مزد هفتگی پنج 5 لیره است، جز خوبی و نیکوکاری چه معنی دیگری دارد؟ اما کار به جایی رسید که عمل جماعت از خیر شناسنامهشان هم گذشتند. <تصفح> کسی که بدهیش به بوفه از 50 لیره بیشتر میشد، شناسنامه اش را ول کرد و میرفت. توی بوفه دو چمدان پر شناسنامه مانده بود. اگر حساب می کردی که هر کدام از اینها 50 لیره می‌ارزد، کلی پول می‌شد. اما کسی پیدا نمیشود که بابت شناسنامه پنجاه لیره بدهد. پنج قروش هم نمیدهند. اگر این کار خیر رئیسمان ادامه پیدا می کرد، شناسنامه توی مملکت نمی‌ماند. هر کسی میام از شناسنامه اش رو از بوفه پنیرخیکی و نان و پیاز میگرفت و میخورد بعد هم میزد به چاک. نه شناسنامه تا به این وضعیت را دارد. نه پنیرخیکی. خیکی. بگذارید همینجا کار خیری را که خودم کردم هم برایتان تعریف کنم. کارگرها شروع به التماس کرده بودند و میگفتند دستمون به داملت آقا بیا پیلی رو بهت بدیم این شناسنام بده. گفتم حالا که رئیس دارد کار خیر می چرا من نکنم. برای همین عوضا کلن به هم ریخت. کسانی که تا اون موقع فکر می کردند اسمشان علی است وقتی فهمیدند اسمشان اسقر یوسف یا حسن است کمی تعجب کردند. کسانی را که سروازی رفته بودند دوباره برای سربازی خواستند. و بیشتر کسانی را که اصلا سروازی نرفته بودند، هیچ وقت برای سربازی نخواستند. معلوم شد جوانهای مجرد ازدواج کردند و سه چهار تا دا بچه دارند. با آنکه سالها از آن موقع گذشته اما هنوز هم در روزنامه ها خبرهایی می که مثلا پرونده ی آدم زنده در سبت احوال مهر باطل خورده و آدم مرده از نظر سبت احوال زنده است. به نظرم این بلبشو از موقعی شروع شده که من محض اینکه کار خیر کرده باشم، شناسنامه ها را یکی پنج لیره میان ها پخش کردم. اگر کسان دیگری هم بودند که مثل من کار خیر کرده اند، در آن صورت مسئولان مربوطه نباید بیخود وقتشان را برای سر و سامان دادن به امور تلف کنند. همینطور بود و بود تا اینکه رئیس از قضیه بو برد. زمستان شده بود. رئیس توی چادر سردش شده بود. رو کرد به من و گفت اون شناسنامه ها رو بیار بریزیم تو بخاری جایی هیزون اون آن موقع به اندازه سه صندوق پر شناسنامه دستم بود هرچه گفتم این کار را نکنید نشد آخر سر گفتم این شناسنامه ها رو دونه پنجاه غروش بهم بفروشین اینطوری شد که رئیس فهمید کاسه زیری نمی کاسه است برگشت بهم به گفت خجالت نمیکشی نمک میخوری و نمک تو مگه این بیچار گناه ندارن. بعد با رئیس به توافق رسیدیم. از هر شناسنامی که پنج لیره میفروختم یک لیره کمیسیون میگرفتم. بلایی بلای آبو هم سر همین به سرمان حوار شد. کارگری آمد پیشمان به اسم آبو. هفته اول از بوفه یک قروش هم خرید نکرد. آخر هفته که شد، سرکارگر به او به اندازه شش لیره مقوای دایره ای داد. هفته دوم هم آمد و تمام شد، اما آبو باز هم چیزی از بوفه نگرفت اینطوری ادامه داد. سرکارگر به رئیس گفت، آبا رو اخراجش کنیم. رئیس نیکو کارمان گفت، نمیشه. آبا رو چطور میشد اخراج کرد؟ سنگی را که چهار نفر کارگر به زور میشکستند، خودش به تنهایی میشکست. از ده با خودش یک بخچه نان لواش آورده بود. لواش خشک را توی آب چشم خیس میکرد و علفهایی را که از کوه جمع کرده بود، مثل دلمه لای لواش میپیچید و میخورد. اسمش رو هم گذاشته بود. دورمک به رئیس گفتم رئیس باید یه فکری به حال آبو بکنیم اگه اخراجش نکنیم و عمله دورمک خوردن و یاد بگیرن میرن دهاتشون و و پر نون لواش میکنن میارن اون وقت باید در بوفر رو تخته کنیم بیا تا بقیه ندیدن و یاد نگرفتن آبو رو اخراج کنیم اما رئیس از بس آدم خیری بود حرفم را گوش نکرد آبو آخر هر هفته به قدر شش هفت لیره بعد از سه ماه که آنجا کار کرده بود با یک کلاه چیلی پر از مقفه آمد و گفت حسابم رو تصویه کنین میخوام برم. رئیس مقواها را شمرد. آبو هفتاد و لیره کار بود. با خودم گفتم ای بابا این چه وزش هست. کل سرمایه بوفه ای ما پنجاه لیره است. همه این کارها با پنجاه لیره میگردد. رئیس گفت باشه آبو با مزدتو دادیم به سلامت خدا حافظ. آبا گفت این رو جای دیگه قبول نمی کنند که پول مقاطعه کار نمی خوام پول درسته حسابی می خوام نگو قبلا مقاطعه کار دیگر این کلک رو به آبو زده بوده این بار من مقوه های پاره را سوا کردم و گفتم اینها به درد نمی خوره آبا گفت پول اونایی رو بده که به درد می رئیس پولش را داد آبا گفت شناس نامم رو هم بدین یک شناسنامه از چمدان در آوردم و بهش دادم. این نیست. آبا بی سباد بود. همین آبا. نیست داری گولم میزنی. آبو آبا نگو بلا بگو. <تصفح> چند صندوق پر شناسنامه بود. شناسنامه آبا رو چطور پیدا می کردم؟ این مال تو آبا. نه شناسنامه من جلدش پاره بود. یک شناسنامه که جلدش پاره بود بهش دادم. نه مال من پشتش خط خورده بود هیچ جوری کلاه سر آبا نمی رفت هیچ کدام از شناسنامه هایی را که به دستش می دادم نمی پسندید. اینم نیست شناسنامه من برگ دومش کنده شده بود پس اینه این که اصلا نیست مال من زیرش یکی کنده شده بود همه شناسنامه ها را یکی یکی نگاه کردم شناسنامه آبان نبود یعنی شناسنامه آبا رو به کسی دیگر پنج لیره فروخته بودم آبا بیا بهت دو تا شناسنامه بدم سه تا چهار تا پنج تا شناسنامه بدم نوچ شناسنامه خودم رو میخوام. آخر سر رئیس گفت مرتی که آبا بلایی به سرت بیارم که مرغای آسمون به حالت گریه کنن اما این حرفش را فقط من شنیدم رئیس دستش را روی شانه آبا گذاشت و گفت آبا جان من از تو خیلی رازیم واسه چی میخوای از اینجا بری؟ بیا با کنمت سرعمله همینجا پیش خودم بمون. آبو یک دفعه نرم شد گفت دست در نکن آقا آبو همان روز به قصبه رفت وقتی برگشت کسی نشناختش تکلاستیک هایی را که به جای کفش با ریسمان به پایش بسته بود دور انداخته بود و یک جفت چکمه براق به پا کرده بود. کت از بس وصله داشت، پارچه اصلیش پیدا نبود. آن را هم عوض کرده بود. یک کلاه نو هم خریده بود و سرش گذاشته بود. آها، شلاق و سوت را مبادا فراموش کنیم. آبو شلاق را به دست راستش میگرفت و با آن به چکمه های براقش میزد. سوتش را هم به دست چپش میگرفت و مدام سوت میزد. <تصفيق> شما فقط ببینید این رئیس ما چه آدم خوب و خیری. بود. این کارها رو میکنند. بلایی مثل آبو جلوتان سبز بشود و برای تان بازی در بیا برد. آن وقت شما بردارید بکنیدش سرعمله محال ممکن است آبو هم چپ میرفت راست میآمد میگفت خدا حفظش کنه رئیسمونو شبی پیشم آمد و گفت برای همولایتی هایش بنویسم. بنویزم گفت نوشتی سرعمله شدم ده جای نامه نوشتم که آبو سرعمله شده این قضیه نامه نوشتن چند روز طول کشید. ابومیر رفت و میگشت و آدرس قموخیشی، رفیق دوران سربازی کسی را پیدا میکرد و پیشم می‌آمد. حالا آقا جون، یه نامه واسه این بنویسیم. رفت اسبه و شلاق به دست راست و سود به دست چپ یک عکس هم انداخت و فرستاد دهشان. اما از طرف دیگر آبو سرعملگی نمی توانست بکند. سوت به دست فرد و فرد سوت میزد. شلاغش را زرد و زرد به چکمهش میزد نمیگذاشت عمله ها نفس تازه کنند و ازشان کار می کشید. اما آبو سواد نداشت. راستش کمی هم خول بود. سر عملگی کار سختی است باید بنویسی کرد کنم از عمله ها چقدر کار کرده؟ چند متر مکب سنگ خورد کرده و غیره. آببا از پس این کار برنیاممه. رئیس خیر بهش گفت: آبو،دلخور نشی ها؟ کارتونی؟ آبا نتوانست بگوید کار خودمه. صدایش در نیامد. تو دوباره عمله بشو. آبا گفت. نوچ. نمیتونم. چون عمل جماعت با هم دشمن شده. آبا دیگر پیش ما نماند. در برابر خوبیی که رئیس بهش کرده بود، دیگر به قضیه شناسنامه هم گیر نداد. یک شناسنامه دیگر و ای که در آن نوشته شده بود پیش ما سرعملگی کرده بهش داد. آبو دعا کنان رفت آبو همین که از پیش ما رفت رفت پیش دیگر مقاطع کارها و گفت سرعمل است آبو را استخدام میکردند و همان روز هم اخراجش میکردند <تصفيق> آبو چه بکنند؟ دیگر سرعمله شده عکس انداخته برای همولیتی ها نوشته که سرعمله شده چهار روز هم سرعملگی کرده دیگر نمیتواند مقامش را پایین تر بیاورد نمیتواند به خودش بقبولاند که دوباره کنه. سرعملیگی هم که از دستش بر نمیاد. آبا بیچار شد آبا بدبخت شد آبا هنوز هم بدبخت هست مرخای آسمان به حالش گریه می کند. الان در استانبال است کاغذ سرعملیگی را که به داده بودیم هنوز نگه داشته. کار پیدا می کند اما دو روز بعد عذرش را می خواهند. چند روز بعد از مرگ میلیونر خیر آبا را توی خیابان دیدم حالش زار بود گفتم سلام آبای سرعمله؟ گفت سلام آقا، رئیسمون فوت کرد شنیدی؟ چه آدم خوبی بود، خدا بیا باکس گلوی آقا رو گرفته بود این بود کوچکترین خوبی که میلیونر خیرمان انجام داده. و یک دفعه یادم افتاد و برای تان تقریف شاید میلیونر زیاد باشد اما مثل اون نیست بلد بود چطور از آبایی که برای انتقام گرفتن عملش کرده بود و با همین کار بدبخت و زریبش کرده بود خدا بیامرزی مرزی بگیره.